گمار کردنی دلیر سلین گگرانی عزیز و خوشوی سلاوتن لیبید خوشحالین لبشی هشتمی خویند نوی کتبی چشتی مجوری هجاری مکریانی دا حتین ولاتن فرمون لگل بن حجار مكراني بردوام دبیل استګرانوی بسر هات کنجانی خو لګل هاو ردوست کاندا لشکری دوست کانتری مامستف فوزی مامستف فوزی ملایشي خلخی ابابيلي شل زوربو شیخ محمود لپاش کوجراني عرفان افليو وستبو فوزی ک شاگرد عرفان وب کتا راوشکاری فوزی لترسان پروازي ولاتن بو مویک لنوکل هرب وتملاده هاتب ومکرانو لګوندی اجی کند دجیا زور عالم زور کرد شاعر ای تو وقت آردی بهار بو هموش دبو نصح تو رشان دانی او بی ری کرد عتی خست میش کی زور دندانی او همنی کرد شاعر پاش مرگی بابم زوری پی خوش بو کن چارم دست لخو بردم دیگود زور حیف تو نخو نی اما لترگا معلومه به دسلات بوین بابم حرمتی ل ناخلک زور بو دولةش حبو تا دنیا نبو و پاشا گردانی و خلشی امنیه د ترسان یمش توانيبومن بمنین بلند باب مرد شیرازه دولتیش به انگلیزو روسو روس او امریکای بوهران ل بر و حل دنیا مو بزور دارو بزور هر وا اغای زلب وک نهنګ ور د ماسی قوت ده قباله نو سین وقدمو پیشنهاد هتنی ادارې ثبت زور و باو کوتبو اما کو او میرزا فیل تنانی که دیانزانی قبالی ملک بنوسن. من چوبوم ایباراتی قبالا کون یکم بروانی لبر کرده بو. تنیا ناغورینی دویست تا بی بیتا حسابی. با شو منیش گشم کرد. لهر قبالی ملک کرین یک یان دبی بلیم ملک سندن یک للاین حاجی بایزاغا و کورانیوا که او سا یکمین دا سلا داری چکبون من بدستو بومو بومه اشناین. ام اشنایتیا پرستمی. جار رشید اغا نوبار، جاره کری علی اغا جاره حسین اغا قاجر د انویس دو سی زویم لبستانن مال حاجی بایزاغا لاگریان لیدا کردمو رازی نه ده بن آشنای قبل نوسیان بدم ګورګو وبچی لترغه کابر کی برپی من چوبو ووند کیدکه شو نیرو اموری لمزلا کیدا برابو نوا هرچن من اګم لم کړه سات نه بو بلالم منی بتاوان بر دزانی روژګل بار شارین به بار ار د ود هاتمه کوچی رفيقه اشريشم د قلبو گیشتینه او ګنده کبره کونه رات لیبو لری تو شهات غاردا سرګردکو ورن تولم کنه وا اغه ګوندو کی کریچی بسواری ګینه سرمن پیروتن رودبن د نا کوجراون اغه بقوندغت فنګ رایهش ته برلوه لیکوه تفنگم گرتو رام طلاقاندو بدست موحادم چخماخم لراکشا کدد کجم دای باری کو رستنو برمن بردو لنزیک تر آغا تفنگ کم داوه کبقسی خوی اپروینه چه باوحالش چومشکیاتی احمد آغای حاجی بایز آغا که اویش لبهانه چیوادگر را وابزانم اسپیکی لآغاکا استند زور بخته ورم کله هاتوکردنی مالې احمد اغا لقرع یوس دغل سید کامل شاعر هره باش اوغه قوج بگی قصه خوش بنو بنگدا رم د بوړو یادی شیرینی او هرگز جانم هرگیز لا بیرنا چتوه هلو د معنی لترخه هواي لاوتیو کله پری بیاقلانه جاري کترج لګل ور د ملکي ام پمنده لسر او برام بردی بسګي او د دابو شرح او خزمی خوکرده و سیدانی کولیجا کمال مالخالوان بون به حواری منوحاتن که چاب و اویش بیخوین رجان دا کجا دبوای لبوکان کاسپی پیدا کمو جنیش بینمو به بیومیردی نمین موا بلام آواتم پیکاد که براکانم بینرمه مدرسه استاش گریه کبوچی که بو خوشکم نردو با خوشم پیم نخویند چون که تایستا نکرل خانواده خومند بگره للاوش انسانی اونده زیره کم ندیوه بله اقلم وو که نبیشن بخوینه زور بداخوه هم باباسی کاسپی و سرمایه هاوارم با کاک که رحمانی حاجی بای زغا برد پیان ست منی دا که کاسپی پیاب کم دگل کورک دا بوین شریکو حتی چلت من من زرر کرد کلکی وشتر گیشتر عرضی با پلا قرزکی رحمانم گرانده و نوکا توشی زیانی زورتر بم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 خواهز بینیم لیکردو سری گرد کچی که همه دینو بارم لیمارک را که اشتا تمانی لچارده سالان دابو بو مخارجی بوکینان دامه بوم که برای که بناوی عبدالکریمی شوکد که بازرگانی کتال و بو خلکیش بسود خوریان بازده کرد پیاواتی کردو تی من قرز ددامیو هر بم دوا توانیم جن بگویزموا بلام تا بخومزانی پتر لسی هزارت من با عبدالکریم قرزدارم روشک لی پرسیم با کاس بیگ ناکی و تم دسمه چون و تی تو زور قرض قرزداری ها 500 ست منی دیشت بدامی یان گال دی یان پامو دگل کونه کم دم مزران دوا توتنی شینی خرابی دکری دی کتاو سبیل رجی دکردو با عجمانی دفرشت با نیو قزنجکی ورده ورده دبو جامو زستان بو رگوبان گیرابو ترسیاجمیش بو حتنا کردستان زور با بو. روژگ، حسین کنایوی شریکه کم کن بو حتنام، شلاجه بو، لوتی تی کرد بو، و تی مال من خراب بو، توتنی شینی زورم بسرده ما و تو چاری ناچار امباریک من بو توت شین گیرتو، سری لبریزستانو منگ یک بحر لنا همیدیان سر من لیده نایوه. روژگ دیتم فتحی بحال دواناتو بزیس مالی بو، وفي ساعة دلو پيزورو ترائي بنی عمبار توتنکمان هرچن نوگزگ لسر و بنی ورزيوه بو تزير ری بغوش توتن بدرجه هر بالا فروش رو لپر دوله من بوين هر یکی چوار هزار و پیان من من پیگیشتو هر او روشا قرزی عبدالکریمم دایو دسمایشم بو مایوه هر او سالش لإداره توتنی بو کان بو ما عمبار دار مانگی بسط و بیست من بو شرطه دو من کم بو او کسب برتیل بی کده مزراندوم توتنیشم با بر و دکر ریو دفروشت هندک شعرم لسر توتن دزین حل جه رابونه و هرچی گو کاریه کی لئی داره توتن دادک را درم خسته بو باز رسی گشتی لطرانه و حاته بو نایو فرهادی بو داوی او شعرانهی لکردم دگل خوی بردن پش ماویک نامی کی مجلی گالتی بابا شملم بو هد اگر بیه تاران جگه من بو تو دیاره من که لابنه ج جه کاف بوم نده چوم بلام رنگ اگر اودم لسر اوقس قران رویشت بم بم توانیا ببم بنو سریکی گالت چی سال و دو خوم کرد بازرگانی گنم دگل برادره که بوینا شریک گنم من لبوکانه و دبرد توریزو دمن فروشت، چونکه زور من دبرد اگر کلوی نیو شای خیر بکرد آیا هشتان زور بو جاریکیان سط بیست تمن من زرر کرد هر روژه چوی ندیدنی همده مین آغای محمود آغا که آغای بوکان بو قپانو سرانهی مالاتی بازار من ایجار کرد بمانگی هشتاو یک هزار تمن دیش خویان کرد شریک من نو روژ من با دست دوا بو یانزه هزار تمن من خیر کرد تلسریان زیاد کردین جارک همامی بوکانم با ایجار کرد، بلام نشو مسریو به هر ست من خیرف روشت موا خلاصه لبوکان خیرو بیرم بسرداد باریو تواو ساز بوبوم فعید دلیه دنجی خوش بجیوی جان. همزه شریکم زور دنجی خوش بو. بریار من داله توریز نتی نه او اوتیلک که مکردی سابلا گیده چونه چونه اوتیلکی کا که همزش شوالش درک داع قرانیشی گود خان اوتیل هات اوتی. هر چند لکردیتی نگم بالام او دنگ زوری کار لی کردم و تاکه ی دو نفری دور لجادی دینیوس شنید خوارد که پولمانلی نستی نو هرچی دمانویه با من پیک بنه. باو شرط روژیجاری گویل گورانی همزه بی جگلکاری روژمان کسردان لبازاری گنم فروشان و بشارگران و سیر کردنی و راست بازارانو چاو چراندن چا بو شوانه هر لعیواره و دچوین سینما اما راست دوه استاش نمزانی کم فیلم باشو کم فیلم ناخوشه. خاون سینما کن با راکیشالی لوان کچی زور جوانین بخزمت کر راده پیاو کللوژ داده نیشت چه که زور لوسی بنازو نوز فیر کرو به شیرنیو عبجاو دهات جورو به دستبازی یکو گاما چه کدوان پولیکی باشه کی چوار و پینج برابری نرخی بازاری لمشتری دستن یمش لو دادوشینو دزبرینه به عشق رای خوشمندهاتو به انقصد ملمان بتپکو دکر روجیک لسرق سی خالق چوی نمزگو تک لطوریز به صاحب الامر که گوتیان چوار شمایان زور خوشم حوش و جوری مزگود لجنو کچ جمعیده بردی دیواریان دلستاوه که با مراد بگن. لجوره و گمبزوی که که بو دیانگود ایماما. ملائکی پیری ردین خناوی با زیارت رادگیشد. دوی زیارت من دوت منم دایا. که برا که هیچ شایی پتری ندابویا لو حاتمیم واقع بردوا. هر وک بترسه کلی بستین موا نه تنکی باخلیو خویده سوچ زقلم نیروانی. روانی تا تماشا هم دکرد چاوی کلی داده دا گرتم تواو دل خورد بوم همزمتی گیندو لیچو پیشو بطوری تی را خوری پی گو بوچاو لحاوالم داده دا گری ملا گوتي کسوک ایوه مردنی لسر یک دوت منتان دومی استاش امرو ورن مال من نوشنی زور جوانم بدستا کامیانتان هل بجار لیتان سیغه دکمو خسمت کارم من گوتم آغا ایم سنی مذبین سیغه قحبالاییمه وکیکو به حرامی دزانین امناکین اخی خالکی شاوتی خوونکا سنیبن پیواچک حیف سنیبه چوشه نزیارت سید حمزه ک عزیز خان سرداری مکری لبارگای او نیجراو ګورکشی زوری قدر جراوه چون ک له دورانی د استلاتیا خلکی تورزی لبالای قاتی رزگار کردوه رنگه نش شان زانيبه اوش سنیبو او وی لبیرما کاسرنج سرنجی راکی شابم دیدار لماالی قرسید نویگ بو که دیان گود فال دگریت و نشت دنو سی. خانوبرکه دو حساری دنویگ دا بو مشتری وک میروی دوری چوری کامل ببون. دو سید وقت بدا که فلان روش بینلای لی. که زانی دو کرداتون گر جیر رگی لی خویدینو قدری زوری گرتینو تیری قصه خوش با کردین. پاش چند سال بیست ماه کسید جاسوسی انگلیسی نبود. لطوریس با رویش سرچا کردن کردند دشون لای دلایک. گوییش تیکم با بنوسه کاریش تاشی نبقرز نبی. من دو شعر فارسی بونوسی بو کلبیرم نماون بلا بو. من مون. بالا مناکی او بود. هی به انصاف توریشکت لای من داشی و قرز ندهی وا. من کیت بگرم. کابرا دشوش یکرت بود. حالی واسی بود. راج گوتی نزنم چت نو فالم هر چی د خینه تو په د کنیو پېشم نال چیا اوند هم له بیر چو بلهم بو حوالجر که ماتورېزو چوما باغی ګولستان دیتم ترکیه زورنالې ده هیڅ تکم پېلوه عجایب تر نه بو پېم ونه بو جګل که زورنالې بده چن سیره ترکو زورنالې بابم زور مسلمان چی براستی بو ملش بو اوانی دین ناسی بولیو پیایوی خواین دزانی هر زور لمندالی موا لطمانی پینجو شش سالی موا فیر نویجو جماعتی کرده لبیر مجاریگ زور گریم چون که جماعتی نویجی سپینیم فوتاوا هر لمندالی زور کالاوا روشوی رمزانم بطاوی گرتوا لمجلسی بابم دا با سرباسی دینداریو پرزگاری بو زور جردم بیست که کز زور دیندارو فی سرکز دینی ک زورم بیر لدین دا کردوه که دبید چه آخری حلم کرد. گری استوام بدین زانی. منیش لناو مندالان دا که کم دادید گری بر استوی زلا دمگود او پیاوه زور بدینه. اگر گری استوی زور زخنه بوایا دمگود دینی لوازه. چونکه که کورملا بوم مندالان باوران پیدا کردمو اوانیش دیندارو بدینند ناسی. بو خوشم دستم لگری ملی خومده دا, دا. بداخوا زور بچو بود. با گوربم امنیج دیماریزی دینداران تانک اوتمنه او فقیانو زوری اندگالو نجیابوم دیندار یکم هروه گرمو گرمو بلاندلین گایگ دپال دا گایگ دابی اگر رنجی نگری خوی دگری لنبارو هات ماریزی فقیانو لنویجی سبینی چون ندگریم بلان خداو پیغمبر ناسینو عقیده به شخیاتی شیخ برهانم اروه خویم. ما هرچند خوام به منصوبی شیخ برهان دزانی. دا گل مالا سبایدی زنبیلیش آشنایتی زورگرمو گرم حبو شیخ محمد خانقا و کرشی خوایی دادنامو لقب جوجالای دابومه سید محمد زنبیلیش زوری خوش دوستمو حتا بچو مای زنبیل دای برد موا جوری مالو او پر لطفی دا حبو و حتا لهر دوک بری جوگ دلوارم اگر چیل دوائی دا نوی جیشم دا زور جاران هر ترکم دا کردن بلام روشو تا توشی نخوشی سیل بونم لبغدا دسلی بر ندابو وگ باسم کرد تازه تمنم دبوا بوا یازده سال کی جیکم خوش دویست ببی اوه هست للای دلبر بر بدشکنم دا پال خومداد دستو تامو پیو حق بله او دلداریا زوری دلنرم کردمو هستو بیری نسکی فیر کردم دلداری کی زور پاک بو. هرچند دل براکم ده پش زور سالان هستی پیکردو روی خوشی نشاندم بلان فرقی درای مالی باوشی او باوشی من نیهیشت پیک بگینو بر همی همو دل دوراندن لیک دو ماست تینه پاریو بو یک جاری لیک دیدار آخیرت بوینو پیری بپیری تاو بیرم دیتاوا آخی که سار دی بدودا دنیرم دو همجار دلم وک پا پولیگ با پرای پر گولی رومتی کیجکی کی کچا مردارو نشتاوا هرچند خلق دیان گود در موچاوی دنکدن که اولاوی او سپیلکی زور جوان نیا بلا ملبر دلی من وینوسی خدای جوانی بو اویش زوری خوش دویستم رشمالیان لندزیک رشمالی خانخوی من بو هرچی غیق مان نیوان بو روزانه که پیوین دچون کاری و کاری مالی لسر او بو زور در فتمن بود رخصا که یک تر ببینینو براز و نیازو ورد ماچان خلو خوې خمدامر کنین شبيك لشو شغبوندا استاج نه زنم چون توانیم خوم لسغان بدزمو چون ميره وقت دسی ل صبر درگاه چیغلادمو به چم خبری خبرې کموا هات درو لسر د درو یان د دریش درېش بوین او انده کیجه کی پاپو شرم به خو بو کشرمم دی به هیز باریک خیالی خرابم بدلدان هاد حزم دکړت هلی ګرم بلان ترمای باوکم ده ته برچا مود ترسم ویک پښما وېک له دل خونده برغارنده ک بسمو هلی ګرم بلان پای هو ګوتيان برای کانی زانیانو پاسی د دیرن و توج ببینن سیبرد سیبرت بتیر هر اوندم توانی لدرفتهک ده نیو دقیقه بی بین مود خو ازد به تر وګارینوه راستي برینی کی تازه حته برینی قرت ماګه ګرټوی دلم لپاش او د جار نه همېد بونم ایتر دلداري راست قنیم لبیر شووه بومه پپولیک کله ګله کوا ب ګله د فرو لجاب لهر دی شی خوندومه لهر جهی پی رابر هر جوانیکم دیوا چاوی بزم تی بريوه جاین بولا جنین کداون یان به زین هاتو تسرلیوانو جر نجر به دو قصه خوش بسریان کردو ماو گاگای کش ماشوموش یکم دست کوتو ها هشتا لابه لوسو پوز جن آقای زورجوانو بسرو سیماو که خداو پیوانا که لامجلس پیوان دادنشتو لدا کجانی کشه خلقو گندیانده قصه سرو پیواناو بو تمانیشی لو دیو سی سال بو نازانم چونی چاو دابو من به هزاران نرمفیل که شمیه برکمندی خواییو با تپکه او بو. ماویی که زور وقت دایکه کی جان، جاک رو سویلی هد. مرد لودل داریا در نچومو لراستیش دا مرگی او داغی که گوری بجر گوانم. ایتر او دلداریا راستو گشتی با جنهانم دوائی هاتو لهر دو جاری جنهانم دا عشقی شریکی جیانی خون بومو زوریش خون با بخت ورزانی وا. باشویستان لیرده بشی هشتمی خویر نو چشتی مجاوری مکریانی کوتایی تا بشکی تر همو لایکتان بن.